امروز شما را با صنعت استان اصفهان آشنا میکنیم. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست. پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی میرویم؟ بله. اکنون با هم به کارخانه زوب آهن می می‌رویم. محصولات این کارخانه چیست؟ در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می‌شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. مبارکه؟ مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟ بله، مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است. تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از پنج میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می‌کنند.